وقت در همین زمینه بنده یک حدیث می سراتون مضمون حدیث شریف اینه که وقتی این آیه مبارکه نازل شد من یعمل تو انیوزدبه بعد گفت خیلی واقعا تکنه انده است گفت جاعت قاسمت و زهر یعنی که انه پشت مشکل. از اینکه این آی مبارکه نازل شده که هر که خلاف کند باید مجازات ببینه بارها بنده ارز کردم امام علی السلام دور سفره دست میکشیدن مثلا بعد یک غلامی گفت آقا چه خبره کمه تعبیر از بنده است امام علی السلام این آیین باره کرده باش خونده این حقیقت نیسته زرب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئن یعطی آرزقا وقتا من کل مکان ساده همون یک امی الممنی در نجیول فرموده ما زالت نعمتون ولا قذارتا ایشن الا به زنوب نشتره هوا. از هر ملت و مملکت که امنیت زوال آمد آسایش زوال آمد ارزونی رخ باد گرفتاری به وجود آمد این الا و لابد از قانون شکنی از فساد از و از گناه است. و الله خداوند متعال نعمت رو به بندهش که اتا فرمود بی حساب پس نمی گیرد اونالله لا یغیر ما به قومه حتی یغیر ما به یک واقعیت هم. فقط قفلت میکنیم از این واقعیت از هوای عالم هستیم زرب الله مثلا قریتن کانت آمنه مطمئن نه یعطی آرزقه من کل مکان خیلی در رفاه بودن خیلی در آساش بودن درآمد خیلی زیاد بود رودخانه ها پر آب بود اما ناشکری کردن کشی کردند قانون شکنی کردند خب زوالو بود.